افشار عزیز سلام برخلاف تصوری که هنوز هم در رابطه با تو دارم تو الان سی سال رد کردی و من هنوز سی سالم نشده این خیلی تفاوت داره تو به عنوان منشو دفتردار وارد شدی ولی اون روزای اول ثابت کردی که میتونی یه فروشنده قوی باشی امروز که 25 5, تو یک فروشنده قوی هستی از نظر من و بر ترست قلبه کردی این به شدت برای شخص من قابل احترامه تو جنگیدی و داری میجنگی از گوشه و کنار زحماتت به گوشم میرسه تا حدودی خودم دارم میبینم امیدوارم امیدوارم امیدوارم که همینجوری ادامه بدی خسته نشی و به قول من قدیم تو فروش کار میکردم یه گردن کلوف توی فروش بشی اول برای خودت و بعد هم برای نوبیناس برای تارزی سلامتی دارم انشالله بهترین ها سهم شما باشه